هوا ملایم بود یک روز آفتابی زمستان دیگر زمان برای مفهومی نداشت شاید تازه بعد از ظهر شده بود پای چپ هم کمی عذیت هم می کرد برگای روی پیاده رو خیال کردم دارم پا می گذارم توی یک گذرگاه جنگلی دیگر آنگادین توی سرم نمی چرخید بلکه به کلمی شیرین در و جرفتر سلونی فکر می کردم. پاکت رو باز کردم. تویش یک دسته اسکناس بانکی بود. بدون کوچکترین نوشته یا توضیحی. از خودم پرسیدم این همه پول برای چیست؟ لابد زن وضعیت ناجور کتو و لنگ کفشم را دیده بود. قبل از این کفش های پاره یک جفت کفش گنده بنددار با تخت راحتی داشتم و حتی تابستان همانها را پایم می کردم. این کت قدیمی را هم دوامین زمستان بود که می پوشیدم برگی را که امضا کرده بودم از جیبم بیرون آوردم صورت جلسه یا به عبارتی خلاصه تصادف بود توی این کاغذ نه کوچکترین نشانی از اسم پلیس دیده میشد و نه ظاهرش به برگه های اداری شباحت داشت. شب از فیات به رنگ سبز چمنی به شماره پلاک از مبدع پارک کاروسل سمت میدان پرامید در حرکت بوده هر دو به سالن هتل رژینا منتقل شدند بیمارستان مرکزی بخش اورژانس پانسمان پا و بازو اشارهای به درمانگاه میرابو شده بود از خودم میپرسیدم کی و چطور منتقلم کردند تو این خلاصه گزارش نام و نام خانوادگیام را نوشته بودند همینطور تاریخ تولد و آدرس قبلی هم را. حتماً تمام این اطلاعات را از روی گذرنامه قدیمیم پیدا کرده بودند. نام و نام خانوادگی زن را هم نوشته بودند. ژاکلین بوسرژان. به اضافه نشانیش. میدان آلبانی. ولی یادشان رفته بود شماره خانه را مشخص کند. هیچ وقت این همه پول توی دستایم نگرفته بودم. ترجیح می دادم یادداشتی برایم میگذاشت ولی حتما بعد از تصادف در شرایط نوشتن نبوده. حدس میزدم مخوررمایی چهارشانه همه این کارها را انجام داده. شاید شوهرش بود. سعی کردم یادم بیاید چه موقعی سر و کللش پیدا شد. زن توی اتومبیل تنها بود. کمی بعد توی سالن هتل وقتی کنار هم روی کاناپه منتظر نشسته بودیم، مخرمایی سمت من آمد قطعاً می‌خواستند خسارت آسیب دیدگی‌ام را بپردازند و با این فکر که ممکن بود تصادف خیلی جدیتر از اینها باشد احساس گناه کرده بودند دوست داشتم کاری کنم که خیالشان راحت باشد نه اصلا نباید نگرانم می‌شدند توی پاکتی که نام درمانگاه رویش بود نسخه‌ای با امضای شخصی به اسم دکتر بسون دیدم تجویز کرده بود پانسمانهایم هایم رو مرتب عوض کنم. دوباره اسکناس های بانکی را شمردم. مطمئنن تا مدتها دغدغه مالی نداشتم. یاد 17 سالگی و آخرین ملاقات ها با پدرم افتادم که جرأت نمی کردم بخواهم. زندگی خیلی وقت پیش ما از هم جدا کرده بود. صبح زود وقتی هوا هنوز تاریک بود توی کافه ها با هم قرار می گذاشتیم. لباسهایی میپوشید که هر بار کهنهتر از دفعه قبل بودند و هر بار فاصله کاف از مرکز شهر دورتر میشدند همانطور که راه میرفتم سعی میکردم به خاطر بیاورم که آیا به طور اتفاقی در این معلم با من قرار گذاشته است یا نه گزارشی را که امضا کرده بودم از جیب بیرون آوردم پس او در میدان آلبانی زندگی میکرد. آن محله را می شناختم چون گاهی در ایستگاه مترو نزدیک آنجا پیاده می شدم. نداشتن شماره خانه اصلاً برایم مهم نبود. با همین اسم جاکلین بوسرژان از پس پیدا کردنش بر می آمدم. میدان آلبونی کمی پایین تر بود در هاشیه رود سن. حالا توی محله او بودم. دلیل انتقالم به درمانگاه می رابو همین بود. مطمئنا او درمانگاه را می شناخت. بله. خودش این تصمیم را گرفته بود. شاید هم یکی از بستگانش برای پیدا کردنمون به بیمارستان مرکزی آمده بود. با آمبولانس؟ به خودم گفتم وقتی به باجی بعدی تلفن برسم، به نقشه خیابانها نگاه میکنم یا زنگ میزنم به راهنمای تلفن. ولی عجله‌ای در کار نبود. تمام وقتم در اختیار خودم بود تا آدرس دقیقش را پیدا کنم و ببینمش. این کارم قانونی بود. نمیتوانست دلخور شود. هیچ وقت زنگ خانه قریبه ها را نمیزدم. ولی این دفعه جزئیاتی وجود داشتند که باید روشن می شدند. مثلا همین دست استکناس توی پاکت که بدون هیچ یاد داشتی مثل صدقهی بود که جلوی گدا می اندازند. توی تاریکی یک نفر را با ماشین کلپا می کند و مقداری پول به او بومیدند که اگر علیل شد به دردش بخورد. راستش؟ این پول را نمیخواستم. چون هیچ وقت روی کسی حساب نکرده بودم و آن موقع هم محتاج کسی نبودم. پدر و مادرم هم هیچ تاکهگاهی برایم نبودند و معدود قرارهایی که توی کافه با پدرم میگذاشتم همیشه یک جور تمام میشدند. هر دو بلند می شدیم و دست میدادیم. هیچ وقت جاعتت نمیکردم کمترین پولی از او کدایی کنم. به خصوص آن اواخر در پرت اورلان که هیچ اثری از سرزندگی و جذابیت همیشگیش در کافای شانزلیزه باقی نمانده بود. یک روز صبح دیده بودم پالتوه آبی آزمانیش دکمه ندارد. دلم میخواست از خیابان ساحلی تا میدان آلبونی پیاده بروم و به هر ساختمانی میرسم از سرایدار بپرسم بو سرژان توی کدام طبقه زندگی میکند؟ فکر می کردم اونجا پلاک های زیادی وجود ندارد. یادم اومد چطور مچم را فشار داد و چه پوزخندی زد. انگار یک جورهایی همدست بودیم. بهتر بود اول تلفن بزنم و با عجله کاری نکنم. دوباره آن احساس عجیب سراغم آمده بود احساسی که از توی ماشین پلیس شروع شد و در طول مسیر بیمارستان مرکزی به من میگفت قبلا این قیافه را جایی دیده‌ام شاید بهتر بود قبل از گرفتن شماره تلفنش به مغزم فشار بیاورم آن زمان همه چیز ساده بود و هنوز عمده زندگیم را پشت سر نگذاشته بودم کافی بود چند سال برگردم عقب کسی چه میداند شاید یک ژاکلین بو یا همون زن با اسم دیگر قبلا سر را هم سبز شده بود جای خوانده بودم ملاقات هایی که تقدیر جلو راه آدم میگذارد بسیار محدودند این همون موقعیت ها و همون چهره هایی که دوباره برمیگردند درست مثل قطره های شیشه و رنگارنگ کالیدو که با بازی انعکاس نور سبب میشوند تصور کنیم شکل ترکیبی می تا بی نهایت عوض شوند ولی این شکل های ترکیبی محدودند بله حتما این مطلب را جای خوانده بودم شاید هم دکتر بویر یک شب توی یک کافه برایمان توضیح داده بود اما اینکه مدت زیادی روی این مسائل تمرکز کنم برایم سخت بود چون هیچ وقت فکر نمی ذهنم به درد فلسفه بخورد ناگهان نظرم عوض شد. دیگر دلم نمی‌خواست از پل گرونل رد شوم و به ساحل چپ بروم و با خط مترو یا اتوبوس به اتاقم در خیابان ووآورت برگردم. دوست داشتم همانجا قدم بزنم. باید به راه رفتن با پانسمان پا عادت می‌کردم. آنجا توی محله ژاکنین بوسرژان احساس خوبی داشتم. حتی به نظرم میرسید. هوای آنجا برای نفس کشیدن سبک است.